خبیخه در مورد سحر و جادو یاد بگیری اول مقتصرا اشاراتی بکنم چون سوالات هم وقت دوستان هم گرفته نشه اشاراتی میکنن. خوب در مورد سحر و جادو اول این است که سحر و جادو وجود دارد اونهایی که منکر باشن خطر ایمان داره چرا؟ چون الله رب العالمین سحر و جادو رو بیان کردین و بعد این است که این تذکیر سحر و جادو چندین کاری نحا میکنن اول این است که این سهر و جادو حقیقتی دارد یا ندارد و چگونی اینها کار میکنند سهر و جادو دو کار انجامی شود یک همون رسولت تخیلاتند القای تخیلات هست و فقط چشمه ها اینجوری میبینند مند بده بازی. اما یک چیزی واقعی در امر هست که کسی رو دیوانه میکنه. و ماهیت چیزی رو هم میتونه تغییر بدن کل چیز از واقعتش بیرون بیکنند سحر و جادو داخل قرآن در دا مورد سحر جادو داستان های مختلفی آمده اما دو داستان که آمان دو داخل قرآن خیلی تاکیدند یک، داستان حضرت موسی با فرعونی ها و دو، اون فرشته هایی که در بابل آمدند و به مردم سحر و جادو تعلیم دادن پس این علم سحر و جادو رو و در شهر بابل بابل هم در عراق بود در اراق. در عراق شهر بابل مرکز جادو و سحر بود خیلی زیاد اینها مرکزیت داشتن اینقدر این زیاد بود که تم این فکر می کردم کسی که این علم را داره بالاترین شخصی اینجا تو هر فرهنگ در کشوری یک پست خیلی ارزش داره. ها در کشور ما دیگه پزشکی ارزش داره و در کشور اروپایی معلمی و فرهنگی بوده ارزش داره. در هر جای چیزی ارزش داره اما به مردم تعیر شده است. بعضی ر... در... اینجا هم در هر جایی رشته خاصی رو هر فرق... قوم یه رشته خاص دوست داره، بعضی معلمی بعضی پزشکی بعضی مهندی هر رشته های مختلفی که وجود دارند بیاها برای اونها جادو خیلی مهم بود برای بابل اونها از این جادو، یعنی اینقدر زیاد بود بالاترین شخص، بالاترین کمال همین بود تا اینکه الله رب العالمین دوتا فرشته فرستاد هاروت و ماروت اینها رو فرستاد که مردم را سهر تعلیم بدن حالا فرشتها بیا سهر تعلیم بدن چرا اینها اومدن؟ فرشتا نومن برای فساد اومدن اصول سهر رو گفتن تا که تا اینکه بتونن با اصول سهر بین موجزه و بین سیر این فرق را بیاورن. آیا کسی میخواد سیر میکنه؟ اینقدر یعنی این زیاد بود. این, اللہ این آمد که الله می میآمد، موجزه را ظاهر میکرد که حالا کدوم موجزه هست و کدوم جادو نبود. حالا بدون ای شخ داری دار ای دار یعنی این شخص داره میکنیم داره موجزه میکنه، یا داره جادو میکنه. این این شدید بود. به خاطر همین الله رب العالمین هار فرستاد. تا مردم را از جهل از جهل مرکب بیرون کنند آقا اینها اصول سحرند اگر به این صورت سوزن سحر و در غیر این صورت اینها معجزه هستند تا حقانیت انبیاء را ثابت بکنند کنند اونها اونها میگفتم گفت اینها اینجوری میکنند زن و مرد طلاق میکنند اینجوری میکنند اختلاف درست میکنند اصول بیان کردن. اونا دوباره کسی خلاف عمل میکه خودش مقصر بود فرشته فقط خواست مردم نجات بدهند اصول سیر برای اونها گشودند، اینها رو گفتند، حال اینکه اونجا آمده دوباره در زمان حضرت موسی علیه و السلام هم، فرعونیها ها همین چیزو داشتند در زمان حضرت موسی سیر خیلی داره مقامی بود برای مقابل حضرت موسی سیر رو آوردند، چون که سیر و جادو بود و اون صاحر واقع کار خودشو دید، به محضی موجزه ظاهر شد، فهمید که این موجزه هست، این جادو نیست و فوراً همه اونها ایمان و اسلام آوردن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم را هم سحر و جادو کردند. یهودی ها از قبیله بنو زرق نبی کریم جادو کردن و اونها را در زیر چای پوسیده چای پوسیده بیر زروان داخل زیر سنگی در یک مو از موهای این موک وقت شانه بیکن موی اضافه بیرون بیاد موه شانه، اونها رو گرفته بودند یازده گره بسته بودن و جادو زیر در, در چاه زروان زیر در در آب پوسیده در همو سنگ گذاشتند و بالا چاه درخت ها خورمه بود که کهانا روس ها شیاطین گوی یک شیطان هم بعد درخت دیوانه میشه سره شون همین درخت هایی که شکل منحرفی داشته اونجا بودن. شیش ماه نبی مکرم اسلام در شهر بسر خیلی عذیت شد چل روزش خیلی فشار اومد تا اینکه که داخل خوابیده بودن فرشته اومدن میکایل اومد با ملک الموت میگن با جبرائیل یکی بال سر یکی بال پاها نشست داخل خواب گفتن که این آقا چیش هست اون جواب میده مطبوبون این سهر شده کی سهر کرده فلانی کرده کجا سهر کرده در, ب... در چاه زروان چجوری کردن؟ تمام داستان رو بیان کردن خلا چه کار کنه؟ و اینا بیرون کن و سوره فلق و سوره ناز نازر شد آیه رو بخون، گره باز فوت کن همین کار کردن. کردن، اینا اینار خوب میشه نبی مکرم اسران از بیدار شد صحابه رو گرفتن تشریف برده همونجا وقتا زیر اون جا بیرون کرده، همی بودن با نزول آیات سوره فلق و کواسه اینا رو خوندند و س اما نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و دوباره بی کسی هم نگفتن گفتن کی کرده و جوری کردن چرا گفت من دوست ندارم که مردم را به جان هم دیگر بیاندازم اگر می گو فلانی کرده به جان هم می افتادن صاحبکن می کشتن اما گفت نه که الله شفا داده من بی کسی نمیگم چیزا امروز که متاسفه صاحرا میگه ما میدون از کجا میدونن؟ برای پیامبر وحی اومد جبرائیل اومد الیش کجا میدونید این دروغ دارن میگن بعضی از اونها امروزه از شیاطین، از جنات کمک میگیرند برای جادو کردن. چون این جنات و شیاطین در زمان حضرت سلیمان این کارها رو میکردن. امروزه بعضی از جنات کمک میگیرند و با کلمات شرکی و کفری کارها رو انجام میدهند. قومیخه به زندگی مردم خراب کنه تا که برای خودشون یک کسب با و کاری باشه این حرام هست جادوگر اگر از کلمات شرکی استفاده کرد به خودش نجس باشه در آلودگی زندگی بکنه اگر چنین کاری رو انجام داد در این صورت چین شخصی مستحق قتل هست اما اگر از کلمات دیگر استفاده کند علاقت نمیشه اما گناه کبیره کرد حتی بعضی میگه که کفر کرده مستحق قتل هست. برای نجات از سهر برای نجات از سحر هم مختصر دیگه اون اصول شو بخای داخل در آخر تفسیر نگاه کن. اونجا مفسر صحبت کردم اون خیلی زیاد گفته اونجا همونجا استفاده بکنید حالا علامات سحر چی عموما علامات در سحر ظاهر می شود یک از ها سوزش ادرار هست در سحر ظاهر میشه بعد سنگینی شانه‌ها هم گاه ظاهر میشه اینجور نیست قطع این عوارض مال سحر باشن بعضی از بیماری جسمی نها رو دارن. اما این نوع چیزها اونجا هم ظاهر میشن پس سوزش ادرار هست و سوزنک بدن هست بدن سوزنک میزنه تنفر هست گوشگیر میشن سنگینی بدن هست اینا میاد رو بعضی افراد و اینا عوارز دیگری هم دارند. تنها این نیستن حالا راه نجاتش یه دو تا راه نجات بگم یک راه نجاتش این است که داخل احادیث اومده اگر کسی روزانه تا خورمای عجوه صبح بخوره و تا بعد زور بخوره از خرمه عجوه بخوره دیگه بر او سهر و سم زهر بر او تاثیر نمیگذارند. حالا از کجا عجوه میاری شما؟ عجوه کیلی سات هزار تومن گیر نمیاد؟ حالا که نمی به هر روز بخوری حالا دیگه در میمانید بعض از علما معتغیره هر خرمایی هم بخورید سو هفت تا صبح هفته بعد از ظهر سهر و سم تأثیر نمیگذاره علت چی است چه در خوب با خورما چرا علاج میشه به خاطری که در هر چیزی داره خاصیتی هست خاصیت جادو و سم سرد کردن بدن سم کسی میخوره بدنش سرد میشه میبینی وقتی میبینه سرد میشن بدن سرد میشه و جادو همین کار میکنه اون حرارت بدن رو میگیره هرگر اون حرارت بدن از حالت طبیعیش گرفته میشه باعث مرگ انسان همیشه میشه گایگاهی حالا این بدن سرد میشه او بدن و بدن رو بدن گرفته شد بیماری سب بیمار چون تعادل بدن نداره گرما هم زیاد باشه بیماره سرما هم باشه بیماره سیر و سم این خاصیتو دارن برعکس اون خورما خاصیت خورما گرمه پس اونی که سیر خور شده یا سم خورده اگر خورما بخوره دوباره تاد بدن حفظ میشه یعنی اون سرما دوباره مییه پایین و در اون ج... چون داره گرما از خود خرما این رو با پایین میآوره و علاج میشه همین پزشکا می جادوی روداری مله میگن جادو داریم پیش مله نقل علاج میشه هم پیش پزشک علاج میشه علت اون اون پزشک که همون دارویی که به را برای افزایش گرما هست تضریق میکنه بیاره پایین علاج میشه و به همین صورت اینجا علاج میشه پس اینکه اونجا اندو نیست که سیحر نوازید، سیحر هست، آم اما از دار این دارو استفاده کرد و اینجا اما از این دارو استفاده می این یک را. راه، راه دوم خود سوره فلک و ناسا روزان سو و بعد زور بخونید رو خودتان دم بکنید حالا دیگه، سحر و اونها باطل میشن حالا آیت دیگر هم هست، این آسان ترین راهش هست که بخصوص خانوم های خیلی و سواستان که جادو شدین حالا از این راه استفاده کنند was jadu batil wisi Allah rahaih tiga ramas